در این زمان مهمتنی اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سهم شما میرسونم در حالی که نبد در شرق حلب به شدت ادامه دارد تنها در نیمروز شنبه بیش از 20 هزار تن از ساکنانی منطقه خانهشان را ترک و به غرب حلب پناه بردند خبرگزاری اینترفکس با تایید این خبر گفته که بیش از هزار دویست از مخالفان مسلح نیز را زمین گذاشتند پیشتر سازمان ملل اوضاع انسانی در مناطق تحت درگیری در شرق حلب را بحرانی توصیف کرده بود انتشار خبرهای مبنی بر ناپدید شدن صدها تن در شرق حلب پس از فرار و پناه آوردن به مناطق تحت کنترل دولت سوریه و نیز جلوگیری از شهروندانی که در حال ترک حلب هستند و هدف گلول قرار دادن آنها از سوی مخالفان مسلح نگرانی سازمان ملل را برانگیخته است نجات پارسی اروپا نوبت به فرانسه رسید ماریل لپن تحصیل رایگان برای مهاجران غیرقانونی را ممنوع اعلام کرد مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبه ملی فرانسه خواسته است تا حق دسترسی به تحصیل رایگان برای پناهجویان غیرقانونی در این کشور ممنوع شود گزارش گزارشها خانم لوپن گفته بود که ممنوعیت تحصیل رایگان باید شامل همه مهاجران شود اما او بعد از سخنرانی خود به خبرگزار فرانسه گفت که منظور او مهاجران غیرقانونی بوده است 650 پناهجوی مدعی زیر سن بزرگسال از آب درآمدند یکی از مشکلات اصلی دولت دانمارک در تمام این سالها دروغهای شاختاری ست که برخی از پناهجویان برای پنهان کردن هویت واقعیشان هنگام تقاضای پناهندگی مطرح میکنند از جمله این دروغها هم البته عدم سن واقعی آنهاست حال مقامات وزارت مهاجرت دانمارک میگویند پس از بررسی و مطالعه علمی از صدها پناهجو متوجه شدند که دست کم 600 نفر از آنها سن واقعی خود را پنهان کرده و خود را نوجوان و یا به اصطلاح زیر سن جا در حالی که سن واقعی آنها به مراتب بیشتر از عددی است که در کیس های خود اعلام کردند وزارت مهاجرت دانمارک برای پی بردن به سن واقعی این افراد از یک واحد پزشکی قانونی دانشگاه کپنهاگ درخواست کمک کرده که با کمک اشعه ایکس سن واقعی 800 نفر از کسانی که مظمون به خویی بودند را کشف کند که نتیجه آزمایشکان نشان میدهد که 600 نفر از این افراد او که عمدتان افغان بودند سن واقعی خود را پنهان کرده و درباره سن واقعی خود دروغ گفتند سفارتخانه جعلی آمریکا در قنا ده سال ویزای تقلبی صادر میکرده وزارت خارجه آمریکا از کشف سفارتخانه تقلبی این کشور در پایتخت غنا خبر داد که به مدت ده سال ویزای تقلبی صادر می‌کرده روسای دوشنبه، شنبه و جمعه صبح پرچم آمریکا بیرون ساختمان این سفارتخانه تقلبی در شهر آکرا می شده و با گذاشتن عکس باراک اوباما، رایچمبرو آمریکا در داخل ساختمان اینطور تروانه بود شده که مراجعان در محل سفارت آمریکا هستند آلمان پس از دارماک قصد تمدید طولانی‌تر تمدید طولانی‌تر کنترل مرزی را دارد نشریه آلمانی اشپیگر گزارش داد دولت آلمان به علت دریافت سرنخ‌های اطلاعاتی مبنی بر ورود تروریست‌های احتمالی تحت پوشش پناهجو قصدorat کنترل‌های مرزی در منطقه شنگن را تمدید کند پیشنهاد آلمان یک ما پس از آن مطرح شده که اتحادیه اروپا با ادامه بازرسی های مرزی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و افراد با گرایش‌های افراتی در پنج کشور آلمان، اتریش، سوئد، دانمارک و نروژ موافقت کرد. نمایندگان کشورهای دانمارک و سوئد نیز روز جمعه آمادگی خود را برای ادامه کنترل های مرزی اعلام کردند. سوبرگ وزیر امور اروپایی دانمارک در بروکسل گفت: من ادامه کنترل مرزی دانمارک را کاری ضروری می‌دانم. در همین حال مرکل صدر آلمان نسبت به افزایش حملات تروریستی در آلمان به علت موفقیت موفقیت‌های اخیر علیه گروه های تروریستی داعش هشدار داد. یک مأمور آژانس ملی جرایم بریتانیا در حال دیدبانی در سواحل اسکاتلند سیوس عضو یک شبکه قاچاق انسان که در قاچاق مهاجران ایرانی به بریتانیا دست داشتن در یک هفته گذشته و در جریان بخشی تحقیقات گسترده اروپایی در این زمینه در بریتانیا و یونان بازداشت شدند. بر پای اعلام آژانس ملی جرائم بریتانیا گما می روید مضمونان بازداشت شده اعضای کلیدی یک شبکه سازمان یافته تبکاری هستند که در قاچاق هاتن از طریق مناطق مختلف اروپا به بریتانیا با استفاده از مدارک جلی دست دارند دولت بلژیک و هلند با جدیت بیشتری در پی یافتن پناهندگانی هستند که برای گذراندن تعطیلات به کشورهای مبدع خود باز میگردند به گفته روزنامه تلگراف چاپ هلند، همکنون این دو کشور با پدیده به روبرو شدند که پرندگان به دلیل نداشتن امنیت و وجود خطر برای آنها به کشورشان نمی‌توانا بگردند. ولی در تعطیلات به کشور خود بازگشتند. حاصل حال پس از توافق بلژیک به هلند چک کردن اینکه آیا پناهندگان برای سفر به کشورشان باز میگردند دقیقتر و جدی تر میشوند. افرادی که گیر بیفتند اقامت خود را دست خواهند داد. روزنامه ترگراف چاپ هلند در ابتدای سال جاری خبری را در مورد پناهندگان اریتری پخش کرد که با داشتن پناهندگی برای تعطیلات به کشور خود سفر کرده و حتی در فیسبوک در مورد سفرشان پست گذاشته بودند به نظر نمی آید که آنها از رژیم حاکن در کشورشان کمترین ترسی داشته باشند و نزدیک به 200 مهاجره که با قایق‌های پلاستیکی از شمال آفریقا و از طریق دریای مدیترانه در پی رسیدن به خاک اروپا بودند در آبهای این دریا توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات داده شدند تا ماه نوامبر سال جاری میلادی 2016 حدود 174000 مهاجر خود را با قایق از شمال آفریقا به ایتالیا رساندند اما حداقل 4700 مهاجر در دریای مدیترانه جان باختند آخرین خبر تعداد 87 شهروند عراق که درخواست پناهندگی آنها مورد قبول مقامات که قرار نگرفتند هنوز در این کشور باقی ماندن چون که عراق اجازه بازگشت با آنها سادر نمی کند. راست موسی وزیر دانماک دیروز گفت وی به همتای عراقی خود به وضوح توضیح داده که دانمارک در مقابل میلیون ها کرون کمک توصیه‌ای نیرو و مشاور نظامی از عراق انتظار دارد بازگشت شهروندان عراقی که درخواست پناندگی آنها در دانمارک مورد قبول واقع نگردیده را تسهیل نماید. لباتون خندون و دلهاتون شاد.